من نمی سوال بکنم میگم به خدا باگذار شده و بگم باید مقدر اما هم محفوظ اون خدایی که میتونه تونه و گذاشت می کنه قدرت دا دارد و حرف کنه امام زنی راوشت جمهن در دعای تو خودت گفتی که ما به زیر دستان کنیم اصلا توی این ماه چند سفارش کرده که کسی به زیر دستش هر احقان کنیم چون اونوزد چون شما میده کارگر داریم نمیدنم اگر کارمند داریم اگر شاید داریم اونوازه چند خدا سفارش کرده که چون اونوزد توی این زیاد بشنم چون رو و چقدر شغفت کرده که همیشه ببیر دستان رو بعد امام میده که خدا رو مام دست رو میشه تو بگی که خود خدا رو به ما ترخون کن ما دستان رو حیال توی زیر دست توی به امام اتن به امام رو ها به به امام بوده شما چقدر انفاق بکنیم حضرت آنه من چون خودم سایلم میمهمم سایل جنگ های عجیبه آقایی را گوه چون من خودم گدا میتونم گدا که میادر کنه شما شما گدایی کی هستیم؟ گوه من گدایی در خودم خدا گوه من شبابی هم در خدا دست من رم می‌کنم به سایل تا خدا می‌شهد به من رم کنم دو خود من من برنه برنه برنه. نه نه نه ما را گرفتداری‌هایی بریم باید آخری برمین باید آخری خدا گرفتداری از سرسی کاری برمین نه مادرمون می‌تونه برمون باید نه پدرمون، نه مادرمون، نه خدا درمون را خدا با دوست برگیر خدا با این سایل این ساهیم که چون من خودم ساهیم در به ساهیم رو میممم باید افتاری که میکرد داشت افتار میکرد یه رو میمونی رو مانی رو سک میگن میگه اومای با رو ردش کنن با شما راحت است چرا ردش کنن باید این اونا برستن فرانه رنگی بره من برستن دارم رنگی چرا ردش کنی؟ چرا صورت مخلا رو من رنج میبرم این رنج میبرم یه نمیدم اون بیرم خدا, خدا یاد تو خودت گفتی تو خودت گفتی اگر فقیل اگر فقیل در خانه شما آمد شما در خانه ادش نکنید با گفت با فقیل. نیشه تو خودت بگی عمل نکنید آقا آره ما امشب آمدیم در خانه تو واسطه همون گفتیم شب جمعه هم هست هم چی نیست این چی نیست شب ده. مارم از اون نیست هست. شب جمعه نیست که هست واسطه امام حسن نیست که در خونه کریم <تصفيق> خدا نمی آمده تو خدا بچه بود گفتی سائل رو رفت یه خدا خودت گفتی؟ هرچی به شما بدی کرد که اومد اوز میشه تو آلم بیعمل باشی خودتی بیعمل نکنی خدا ما من شم اومدیم با و بزروم اومدیم آمد اوز میخوام و اندرستم به از خیلی تخطیراتی فقه بل ازری داید ببین از فقه اوز منو قبولیم اما همه اینی از هر رو کن امان من از تو امان میخوام برای برای روزی که لاینقه و ظالمینه مرد و یه روزی آبا هرچی بگی من اوز میخوام به درد میخوام روزی میامد هرچی شما بگی من غلط کردم من اوز میخوام به در میخوام اما امشب که بگیم من بازی به خان کده خدای نادون رو نه نفهمیدم رفید و دستم من او شب شب و من آمیده ها آمومنی کسا محلی شب جنه شب اختیارتی و محلی و دیشب فرد میکنه این باید اسم این ها بسهیم این خود امام مثلا هم همه چند می‌شه هم خبر می‌دهم مادرم می‌رفته یه دو سه مرتبه می‌جهم سلال مبارد خیلی نمک شده همه وقتی امام حسن رو امام حسین اومد سر برادر شو امام حسین یه ha ha ha havadan çeşme این باشد که من الان آب میخوام شیر میاره شیر به من بیمسون من الان افتادم تو بستر بیماری تو اومدی سر بیماری ساعتی کارنوالو